از همه این مطالب من میخوام اهمیت آموزش پرورش رو نتیجه بگیرم واقعا اگر انسان کارهای کشور رو این بخش ها و قسمت های گوناگون کشور رو بخواد انسان تقسیم بندی کنه به اهمیت موقع اینها رو مشخص کنه اون بالا بالاها آموزش پرورش قرار میگیره جوان ما با آموزش پرورش بستگی داره اخلاق ما با آموزش پرورش بستگی داره یه دی مینال از این که چرا ما از لحاظ اخلاقی جلو نمی البته البته درستم هست ما هم قبول داریم که باید در زمینه اخلاقی جلوتر رفت منتهی یکی از شرایطش این است که ما برای جوانهامون الگو داشته باشیم بعضی ها با رفتارهای خود با عمل خود با اظهارات خود الگوهای بدی میشن برای جوانای ما الگو سازی یکی از اساسی ترین کارهاست. هاست الگوهای خوب انقدر هم داریم انقدر جوان خوب انقدر چهرههای نورانی در تاریخ که بمانه در زمان خودمون اینقدر زیادن که انسان واقعا توانه هر کدام از اینها رو با تعریف اینها تعریف به منای معرفی کردن همینقدر کافیز ما معرفی کنیم اینا رو توانه یک چهره برجسته یک الگو بگذاره جلوب جوان ما جوانایی که از پیشروان خودشون جلوب افتادن جوونای که پای درس بنده و امثال بنده نشستن اما صد پله از ما جلو رفتن ما وعده کردیم او عمل کرد ما یاد دادیم او عمل کرد خودمون عمل نکردیم چقدر از این جوون ها چقدر از این شهدا کسانی بودن که از امثال ما چیزی یاد گرفتن اونا بهتر از ما شدن اونا جلوتر از ما شدن اونا بیشتر به کشور آبرو بخشیدن اونا پیش خدا بیشتر آبرو پیدا کردن چرا که بعد تو کردی و او به جا آورد بعدر ما کردیم او عمل کرد این همه جوان خوب ما داریم اینا رو یکی یکی در بیارن بگذارن جلوه جوان نسل حاضر غیرت او را همت او را صداقت او را سلامت او را فداکاری های او را بینش والای او را رفتار نیک او را با مردم با همنوعان با پدر و مادر با خانواده با دوستان اینا رو بگذارن جلو چشم جوان نسل امروز خود این آموزنده است. به کار زیاد داریم. کارهای زیادی داریم در آموزش و پرورش در های تبلیغاتی در صدا و سیما در های دولتی در ملبسین به لباس بنده خیلی کار داریم، خیلی کار باید انجام بدیم، مسئولیم، شانمون زیر سنگینی بار مسئولیت باید خم بشود، بپذیریم مسئولیت را باید کار کرد، باید کار کرد، همه باید کار کنند.